قصهای هزار یک شب شب 25م چون اهدب به مرد خیات به دهشت اندر شد زن خیاط گفت دگر سستی مکن و کار به فردا میفکن مگر گفته شاعران نشنیده ای آن مکن در عمل که آخر کار خار و مضموم و متهم باشی در همه حال آقبت بین باش تا همه وقت محترم باشی خیاط گفت چه کنم؟ زن گفت برخیز او را به چادر اندر پیچیده در کنار گیر. من از پیش و تو در دنبال همی رویم تو بگو این فرزند من است و آن هم مادر اوست. استماعین است که این کودک به سوی طبیب بریم. چون خیاط این سخن بشنید برخاسته اهدب را در آغوش گرفته کوی به کوی همی رفتند. زن خیاط می گفت ای فرزند این درد ناگهانت چگونه گرفت؟ پس هر کس ایشان را می دید، گمان می کرد که کودکی را نزد طبیب می برند القصه ایشان روان و از خانه طبیب جویان بودند تا اینکه به خانه طبیب رسیدند چون به خانه یهودی طبیب رسیدند، در بکوفتند کنیزکی سیاه در بگشود دید که مردی با زنی ایستاده و کودکی در آغوش دارند کنیزک پرسید کیستید و از بحر چه میآیید؟ زن خیاط گفت کودک رنجوری آورده این که طبیب او را دارو دهد تو این نیم دینار بگیر و به خاجه خیشته که بیرون آید کنیزک به سوی خاجه بازگشت زن خیاط با شوهر گفت اهدب را در دالان خانه بگذار تا خیشتن جان ببریم خیاط اهدب را در همانجا پشت بر دیوار گذاشته بازگشتند و کنیزک نیم دینار نزد یهودی برده ماجرا باز گفت یهودی از نیم دینار خرسند گشت بیرون شتافت نخستین قدمی که از دهلیز بیرون نهاد پایش به اهدب برآمد در حال اهدب بیفتاد یهودی او را نظر کرده مردهش یافت چنان دانست که او را پای بر بیمار آمده و بیمار بر زمین افتاده و مرده است از هارون و یوش ابن نوح پناه خواست و اهدب را برداشته نزد زن خود برد و او را از حادثه آگاه کرد زن گفت چون حادثه این است نشاستن تو از بحر چیست که اگر روز برای و مسلمانان این کشته را در این مکان یابند نسل یهود از زمین بردارند برخیز تا من و تو او را به فراز بام برده به خانه همسایه مسلمان که مباشر مطبخ سلطان است بیاندازیم که به تمع گوشت و استخوان گربگان و سگان در آنجا گردایند اگر این مرده را در آنجا یابند پاکش بخورند پس طبیب یهودی با زن خود به بام برآمدند و اهدب را از دیوار فرو چنانچه چنان چه گفتی راست ایستاده است. پس از ساعتی مباشر شمعی روشن در دست از در درآمد. شخصی را پشت بر دیوار ایستاده دید. با خود گفت گوشت روغنی که به مطبخ آورم اگر گربگان و سگان نخورند. دزدانش بخواهند برد در حال سنگی برگرفت و به سوی اهدب انداخت سنگ بر سینی اهدب آمده چون مردگان بی افتاد مباشر ملول گشت و برخیشتن به ترسید و گفت نفرین خدا به گوشت روغن باد که امشب بیسببی این مرد در دست من کشته شد پس از آن شم پیش داشته بر وی نظر کرد دید که مردی است اهدب گفت تو را گوژی پشت بس نبود که به دزدی گوشت و رغن نیز برآمدی آنگاه اهدب را برداشته همی برد چون بر سر بازار رسید او را در پای دیوار دکهی راست بگذاشت و به سوی خانه بازگشت از قضا نصرانی که سمسار بود سرمست از آن مکان به قصد گرمابه میگذشت. چون به اهدب نزدیک شد گمان کرد که آدمی در آن مکان ایستاده همی خواهد که دستار او را برو باید. در حال نصرانی مشتی برو زد. اهدب بی نصرانی میر شب را آواز داد و از خایت مستی خیشتن بر اهدب افکنده او را همی زد و او را همی فشرد که میر شب برسید نصرانی را دید که مسلمانی را کشته بانگ بر ویزد و او را گرفته به سوی خانه والی برد و نصرانی با خود میگفت یا مسیح یا مریم ازرا این مرد با یک مشت چگونه مرد و چرا چنین خطابی از من برفت؟ از آن شب نصرانی و اهدب در خانه والی بودند. چون روز برآمد، والی سیاف را فرمود که چوب دار از بحر نصرانی بنشاند. سیاف چنان کرد. آنگاه رسن در گردن نصرانی کرده همی خواست که بردارش کند. ناگاه مباشر سلطان پدید آمد و گفت نصرانی را مکش که اهدب را من کشتم. والی گفت از بحر چه او را کشتی؟ گفت دوش به خانه رفتم. او را دیدم که از راه بام به دزدی گوشت و روغن آمده. سنگی به سینه او زدم. در حال بمرد. آنگاه او را برداشته به بازار آوردم و در فلان مکانش بگذاشتم. والی چون سخن مباشر بشنید به سیاف گفت نصرانی را رها کن و مباشر را به اعتراف خود بردار کن سیاف نصرانی را رها کرده رسن در گردن مباشر افکند و همین خواست که او را بردار کند که یهودی طبیب را دیدند که مردمان به یک سو می کند و شتابان همی آید چون نزدیک شد بانک بر سیاف زد که او را مکش اهدب را من کشتم او بیمار بود نزد منش آوردند. من از دهلیز بیرون شدم پایم بره دب برآمد در حال افتاده بمرد. والی به سیاف گفت مباشر را رها کن و یهودی را بکش. سیاف رسن از مباشر گشوده در گردن یهودی افکند. دیدند که خیاط همیشه تابد و فریاد همیزند که یهودی را بیگناه مکشید اهدب را جز من دیگری نکشته والی سبب باز پرسید خیاط گفت بازن خیش از نزهتگاه بازگشته بودیم همین اهدب را در میان راه سرمست یافتیم که دفی در دست داشت و تقنی همی کرد من او را به خانه آوردم و ماهی خریده به خوردن بنشستیم زن من پاری از گوشت ماهی در دهان او گذاشت و دست در دهانش گرفته گفت باید این لقمه نخایده فرو بری احتب از آن لغمه گلوگیر گشت گشته بمرد پس از آن او را به خانه یهودی طبیب بردیم کنیزک به در آمده نیم دینار به کنیزک دادیم و او را نزد خاجهش فرستادیم پس از آن اهدب را نزدی که در دهلیز نشانده بازگشتیم. حکایت همین بود که به راستی حدیث کردم. والی از این سخنان در عجب شد و با سیاف گفت که یهودی را رها کن و خیات را بکش. سیاف رسن در گردن کرد کرده گفت تا که یکی را رها کرده دیگری را ببندم. ایشان را کار به دینجا رسید. و اما اهدب مسخره ملک بود. ملک ساعتی از او نتوانستی جدا ماند. چون او مست گشت، آن شب را تا نیم روز دیگر از نظر ملک قایب شد ملک او را از حاضران بپرسید گفتند ای ملک والی اهدب را کشته یافته و به کشتن قاتل او فرمان داده ولاکن دو سه کس حاضر آمده اند و همگی را سخن این است که اهدب را من کشتم ملک چون این سخن بشنید بانک بر حاجب زده گفت والی را با همه ایشان نزد من آور حاجب به فرمان بشتافت دید که از کشتن خیاط چیزی نمانده بانگ بر سیاف زد که او را مکش با والی گفت که ملک از حادثه آگاه گشته پس والی اهدب را به دوش سیاف داده با خیاط و یهودی و نصرانی و مباشر به سوی ملک برد چون در پیشگاه ملک جای گرفتند والی قصه بر ملک عرضه داشت ملک را عجب آمد و با حاضران فرمود که کسی تا کنون حکایتی چون حکایت اهدب شنیده است یا نه آنگاه نصرانی پیش رفته زمین بوسه داد و گفت ای ملک جهان اگر اجازت دهی ماجرایی که به من رفته باز گویم که او خوشتر از حکایت اهدب است. ملک اجازت داد. نصرانی نصرانی گفت ای ملک وقتی که من به دین شهر آمدم به گران با خدا آوردم و به حکم تقدیر در اینجا توقف کردم و تولد من در شهر مصر بوده و در همانجا نشف و نمایه و پدرم سمسار بود چون پدرم بمرد من در جای او به سمساری نشستم روزی از روزها جوانی زیباروی که جامعی فاخر در برداشت نزد من آمد و مرا سلام داد من به تعظیم او بر پای خواستم دستار چه در آورد که قدری کنجد آن بود با من گفت که خرواری از این کنجد به چند می ارزد من گفتم به یکصد درم ارزش دارد با من گفت مشتری برداشته در بابل نفر به سوی کاروان سرای جوالی بیا که مرا در آنجا خواهی یافت. پس دستار چرا که نمونه کنجد در آن بود به من داده برفت. من از بهر مشتری بگشتم. خرواری از آن کنجد را به 120 درم بفروختم. با مشتریان به سوی او روان شدم. او را دیدم که به انتظار من نشسته. چون مرا بدید دید برخواست مخزنی را در بگشود. پنجاه خروار کنجد از آن مخزن بپیمودم. آن جوان گفت در هر خرواری ده درم مزد سمساری توست. از مشتریان قیمت جمع آورده نگاه دار. هر وقت که من از بیع محصول خیش فارغ شوم نزد تو آمده درمها به ستانم. من دست او را بوسه داده بازگشتم و آن روز هزار درم در آن معامله سود کردم و آن جوان تا یک ماه از من قایب بود پس از آن باز آمده با من گفت درمها کجاست؟ گفتم اینک درمها حاضر است من برخاسته درمها حاضر آوردم گفت نگاه دار این بگفت و برفت من به انتظار او نشستم ماهی از من قایب بود پس از آن باز آمده گفت درمها کجاست؟ من برخواست درمها حاضر آوردم و به او گفتم چه شود که در نزد من تعام بخوری؟ او دعوت من اجابت نکرد و با من گفت درمها نگاه دار تا من باز گردم. دو ماه دیگر از من قایب بود. پس از دو ماه باز آمده و جامعی فاخر در برداشت و به آفتاب همی است. و به دانسان بود که شاعر گفته ترک من دارد شکفته گلستان بر مشتری بوستان سر و سر وندر ششتری بر سمن یک حلقه انگشتری دارد زلعل از شبه بر ارقبان صد حلقه انگشتری بر دل مسکین من پرواز مشکین زلف او هست چون پرواز شاهین بر سر کپک دری چون من او را دیدم دست او را بوسیدم و او را دعا گفتم و درمها پیش آوردم گفت درمها نگاه دار تا من از کارهای خیش فارغ شوم. این بگفت و روان شد من با خود گفتم این جوان در سخا و کرم بی است هر وقت که آیت مهمانش کنم از آنکه از درمهای او سود بسیار بردم پس چون آخر سال شد آن جوان باز آمد و هلیف آخرتر از هله های نخستین در برداشت. من او را به مهمانی سوگند دادم. گفت به شرط که از مال من صرف کنی. گفتم آری چنان کنم. پس او را بنشاندم و تعام و شراب لایق مهیا کرده در برابر او فروچیدم. آنگاه به سفره نزدیک شد و دست چپ دراز کرده با من تعام خورد من از او در عجب شدم چون از خوردن فارغ شدیم به حدیث گفتن مشغول شدیم من به او گفتم ای خاجه گره از دل من بگو شاب و با من بازگو که از بحر چه با دست چپ تعام خوردی چون آن جوان سخن من بشنید آهی برکشیده این دو بیت برخاند گرچه از آتش دل چون خمه می میجوشم، جوشم مهر بر لب زد خون میخورم و خاموشم است جان است تمع در لب جانان کردن تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم. پس از آن دست از آستین به در آورد دیدم دست او از ساعت بریده است از آن حالت شگفت ماندم با من گفت شگفت مدار که بریده شدن دست من سببی عجیب دارد و آن این است که من از اکابر زادگان بقدادم و در ایام جوانی از سیاهان و بازرگانان نام مصر شنیده و همواره شوق آن مرا در خاطر بود چون پدرم در گذشت خاستهی بیشمر برداشته به زاعتی گران از متاهای بقداد و موسل خریده بار سفر به سوی این شهر بستم و همی آمدم تا به این شهر رسیدم این بگفت و گریان شد و این عبیات برخاند تائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دام گه حادث چون افتادم من ملک بودم و فردوس برین این جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم گر خورد خون دلم مردم دیده رواست که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم پس گفت چون به شهر اندر شدم در کاروان سرای سرور فرود آمدم و بارها بگشودم و درمی چند به خادم دادم که خوردنی از بهره ما بیاورد. چون خادم خوردنی آورد من تعام و شراب خورده بخفتم. چون بیدار شدم با خود گفتم به بازار روم و از کار شهر آگاه شوم. آنگاه بقچه از مطاعهای خود به خادم دادم و همی رفتم، تا به قیصریهٔ جرجیس رسیدم سمساران بر من گرد آمدند مطاع مرا برداشته ندا در دادند و به قیمت رأس المال هم نخریدند شیخ دلالان با من گفت ای فرزند من تو چیزی بیاموزم که سود تو در آن باشد و آن این است که بضاعت خود را تا وعده معین بفروش حجت به و گواه بگیر و روز پنج شنبه و دوشنبه شمبه قسطی از وجه حجت به و خودت در مصر و رود نیل تفرج کن گفتم رأی رزین همین است پس دلالان را با خود برده به زاعت به قیصریه بردم و به بازرگانان بفروختم و از ایشان وسیقه گرفتم و سیرفی سپردم و خود به منزل بازگشتم روزی چند بنشستم و همه روزه قدهی شراب و رانی گوشت تازه آورده به کامرانی به سر می بردم تا ماهی که در آن ماه مرا هنگام قسط گرفتن بود برسید. آنگاه من در روزهای پنج شنبه و دوشنبه در دکه های بازرگانان می نشستم و سیرفی درمها از بازرگانان جمع کرده نزد من می آبرد. تا اینکه روزی از روزها که از گرمابه به در آمده بودم به منزل رفته قدهی شراب بنوشیدم و بخفتم و از خواب بیدار گشته چاشت خوردم و خیشتن با گلاب معتر ساخته به دکیه یکی از بازرگانان که بدردی نام داشت برفتم. چون مرا دید بر من سلام داد و با من در سخن شد. ساعتی نرفته بود، که زنی خوب رو بیامد و در پهلوی من بنشست و رایحهٔ طیب او بازار را معتر کرد آنگاه با در سخن پیوست چون من سخن گفتن او بدیدم محبت او در دلم جای گرفت پس با گفت تو را هست که از زر خالص بافته باشند بدرالدین تفصیله در آورد آن زن گفت این تفصیله ببرم و قیمت از بهر تو باز فرستم بازرگان گفت ای خاتون ممکن نیست از آنکه این جوان که نشسته خداوند مطاع و از وامخواهان من است آن زن گفت بدا بر تو مرا همواره عادت همین است که مطاع را به هر قیمتی که گویی بخرم و ربح آن را زیاده بر آنچه میخواهی بدهم و قیمت آن از بهر تو میفرستم. فرستم بازرگان گفت آری چنین است ولیکن من امروز به قیمت آن محتاجم آن زن تفصیل بی و گفت گروه بازرگانان کس را قدر نشناسند پس از آن برخواسته آهنگ بازگشتن کرد من گمان کردم که روان من با او برفت در حال برخاسته با او گفتم ای خاتون قدم رنجه دار و گامی دو بازگرد فلفور بازگشت و تبسم کرده با من گفت از بحر تو بازگشتم پس با بدرالدین گفتم قیمت این تفصیل چند است گفت هزار و یکصد درم گفتم یکصد درم سود نیز تو را بدهم برخیز و ورقی بیاور تا قیمت آن از بهر تو بنویسم پس من ورقی به خط خود بنوشتم و تفصیل از او گرفته به زن دادم و گفتم برو اگر خواهی قیمت از بهر من بیاور و اگر خواهی آن را به هدیه از من قبول کن آن زن گفت خدا تو را پاداش نیکو دهاد و مال مرا روزی تو کند من با او گفتم ای خاتون این تفصیله از آن تو باشد و مانند این تفصیله دیگر تو را بدهم به شرط آنکه مقنعه به یک سو کنی تا روی تو را ببینم ماهروی روی مقنعه از رخ به یک سو کرد چون رویش بدیدم شیفته محبت او شدم و خردم به زیان رفت و هوشم از تن بپرید آنگاه مقنعه فرو آویخت و تفصیله را برداشته برفت من تا هنگام عصر در بازار بنشستم ولی خرد از من بیگانه بود هنگام برخواستن حال آن زن را از بازرگان جویا شدم گفت او زنیست خداوند مال و دختر است که پدر او مرده و مالی به میراس گذاشته پس من او را ودا و گفته به منزل بازگشتم چون خوردنی بیاوردند نتوانستم خورد و آن شب را تا بام داد نخوفتم علا سباه جامعی بهتر از جامع روز پیش پوشیدم و قدهی شراب نوشیدم و اندک چیزی خورده به دکان بدردین آمده بنشستم در حال آن ظهر جبین در آمد چادری فراختر از روز نخستین بر سر داشت و کنیزکی نیز با او بود پس مرا سلام داد و با زبانی فسیح و کلامی نقص گفت کس با من بفرست که هزار و درم قیمت تفصیل به ستانت. من با او گفتم شتاب از بحر چیست؟ گفت شاید دیگر بارت نبینم. آنگاه من به سوی او اشارتی کردم. دانست که وصل او همی خواهم. به وحشت اندر شد و زود برخاست. مرا دل بر وی آویخته بود، برخواستم و از پی او از بازار بدر شدم که ناگاه کنیزکی نزد من آمد و گفت ای خاجه خاتون من با تو سخنی دارد من در عجب شدم و گفتم مرا در این شهر کس نمیشناسد شناست گفت چه زود خاتون مرا فراموش کردی که امروز در دکان فلان بازرگان بودید پس من با کنیزک تا بازار سیرفیان برفتم. چون مرا بدید به سوی خیشتنم خوند و با من گفت ای حبیب من بدان که محبت تو در دل من جای گرفته و از آن لحظه که تو را دیده خواب و خور بر من حرام گشته. من گفتم مرا محبت و مهنت هزار چندین است. آن ظهر جبین گفت من نزد تو آیم یا تو نزد من آیی؟ گفتم من مردی غریبم. جز کاروان سرا منزلی ندارم اگر من در نزد تو باشم مرا هز کاملتر خواهد بود گفت راست گفتی فردا چون نماز پسین بگذاری سوار گشته به سوی جبانی روان شو و خانه ابلبرکات نقیب را باز پرس که من در آنجا ساکنم و دیر مکن که من در انتظار تو نشستم من فرهناک گشتم و به منزل آمده آن شب از شوق بیدار بودم چون با بامداد شد جامعه فاخر پوشیده خود را با اطر و گلاب معطر ساختم و پنجاه دینار به دستار چه فرو بسته به دروازی رزیله رفتم و به خری نشسته به جوانی رفتم به صاحب خر گفتم از خانه نقیب باز پرس چون از خانه نقیب پرسید با من گفت فرود آی. من فرود آمدم و او به راهنمایی من پیش افتاد و همی رفتیم تا به خانه نقیب رسیدیم من نصف دینار زر به دو داده گفتم فردا به دین مکان بیا و مرا بازگردان او نصف دینار گرفته بازگشت من در بکوفتم دختر دوشیزه خوب روی در بگشود و گفت به خانه اندرای که دوش چشم خاتون در انتظار تو نخفته من به خانه اندر شدم خانه ای دیدم که به خوبی رشک نگار چین بود در سر چهار سوی آن خانه ایوانهای زرنگار و بران ایوانها فرش حریر گسترده بودند و منظره ایوانها به باقی همین نگریست و در باق گونه گونه میوه ها و چشمه های روان بود و در میان باغ حوزی دیدم از مرمر که فرشهای حریر در چهار سوی حوض گسترده بودند چون من داخل شدم بنشستم قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست